Thank you. اصل 11. حدود چهار ماه از کوه رفتنهای افتان و خیزان من و شروع اختلافات من گذشت اواخر فروردین ماه، بالاخره محمد با مشفرت که با شوهر زری کرد یکی از دانشگاه های آلمان را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد و با اینکه با جدیت تمام وقتش را صرف یاد گرفتن زبان و درسهای پایانی ترم آخر میکرد ولی کوه رفتن باز هم از برنامهش حذف نشد. هرچه من در مشکلات درگیر میشدم و فاصله هم با محمد بیشتر میشد نامه های زری نشان از خوشبختی و تفاهم و آرامش کامل داشت. از توصیفات عاشقانیک که از مسئود می کرد، معلوم بود علاقهش روز به روز به شوهرش بیشتر میش. و به قول خودش به عشق مسعود هم قربت و هم دوری از خانواده و هم تلاش برای یاد گرفتن زبانه به قول او لعنتی را با پشتگار تحمل می کرد. هرچه ذری از زندگی راضی بود و معلوم بود که در راه موفقیت پیش می من برعکس ناراضی بودم و پس می رفتم و تنها کسی هم که پیشش آهناله می کردم مریم بود مریم با آرامش به حرفهایم گوش میداد و به صبر و نرمش و عاقل بودن دعوتم می کرد و برای همین آخر سر همیشه دعوایمان می شد و من طلب کار می شدم کاش آنقدر لوس نبودم کاش آنقدر از خودم و از وضعیتی که داشتم راضی نبودم کاش آنقدر به داشتن محمد مطمئن نبودم و به محبوبیت خودم پیش او و دیگران جهالت و نادانی وقتی با از خود راضی بودن و اعتماد به نفس کازب در همامی زد معجون مزخرفی به وجود می آورد و مسلما آنچه به وجود می آید لاعقل برای آدمهایی مثل محمد غیر قابل تحمل می شود. من آن روزها به چه دل خوش بودم به وجاهتم به خانواده به خانواده شوهرم و عشق شوهرم و فکر می کردم همانطور که هستم لایق همه اینها هستم یعنی هیچ چیز در درون خودم نبود که به آن تکیه کنم هرچه بود بیرون از من بود و خودم نمی فهمیدم نمی فهمیدم که اگر همه ملاحت و وجاهت دنیا را یک جا داشته باشی فقط برای مدتی میتواند نقص های درونیت را بپوشاند. نمیفهمیدم که وجاهت رنگ و لعاب وجود آدمی است. یک روز هست یک روز ممکن است نباشد. آنچه پایدار است سرشت و درون آدم است. این بود که به جای تلاش برای پیدا کردن راه درست و عاقلانه کارم به لج بازی کشید. و در این میان بهترین دستاویز هم برای ذهن کور و بسته من سریا بود که بی دلیل و بی خبر تیز حمله ام را به اون نشانه گرفتم. سعی می کردم خلع ناشی از نادانی و احساس ضعفم را با کوچک شمردن سریا و جواد پر کنم. به نظرم میآمد آنها به خصوص نه از لحاظ سطح خانواده و نظاهر هیچ جوری در حد من نیستند. به خودم می قبولاندم که لازم نیست در باره او حتی فکر کنم. من و مقایسه با او؟ این شد که به جای الگو گرفتن از موفقیت و تلاش او باز در جا زدم. یعنی همان روش حقیرانه تمام آدم های و ناچیز را در پیش گرفتم که خودشان را بزرگ می و بزرگ می کنند و دیگران را خرد و گوچک تا تکانی به خودشان ندهند چون نفی کردن آسان راه است که آدمهای حقیر به آن تن می دهند. کسانی که نمیخواهند بدانند و بفهمند و درک کنند این درست همان کاری بود که من کردم به خیال خودم خواستم مانع بین خودم و محمد را بردارم مانعی که اصلا وجود نداشت و من با افکار خودم ساخته بودم و اینطور بود که من توی جمع آنها یک غریبه بودم از بحث های آنها از حرف ها و کتاب هایی که در موردش حرف می زدند حوصله میرفت. سر می رفت فکر می کردم به من چه که فلان کتاب در مورد مسائل عرفانی است یا کتاب ادبیات کلاسیک جهان که سر در موردش داده سخن میداد و من از حص دق می کردم با کدام ترجمه بهتر است؟ یا اینکه زیربنای شخصیت آدم را ادبیات میسازد؟ یا خانواده یا مذهب؟ آنها در مورد هر چیزی بحث میکردند؟ از مسائل سیاسی و اجتماعی گرفته تا کتاب و مسائل دانشگاه و غیره و من حوصله ام از همه این حرفها سر میرفت مخصوصاً از کلمات قلون به سب که معنایش را نمیفهمیدم و جواد از همه بیشتر از آنها استفاده میکرد حرسم بیشتر از این بود که همهشان میفهمیدند غیر از من. از اینکه که وقتی در ترجمه گمتنهای که لازم داشتند به مشکلی برمیخوردند پیش سرعیا می آمدند و از اینکه من هیچ وقت هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، دیفانه می شدم. هر وقت از من نظره می‌خواستند، مثل بچه خینک های لوس چشم به محمد می‌دوختم. و از اینکه که به تدریج شاید به ملاحظه خود من دیگر از من سؤالی نمی‌کردند. احساس کینه و تحقیری تلخ می کردم که بیشتر سر لجم می انداخت. وقتی محمد برایم کتاب می آورد، براش می شدم. احساس می کردم می خواهد بگوید من چیزی نمی دانم و وقتی چیزی نمی گفت و بحث کردنش با دیگران را می باز زجر میکشیدم و در تمام این موارد طوری رفتار می کردم انگار گناه نادانی من به گردن محمد است با او لج می کردم و اوقات تلخی نمیدانم چرا چه مرگم بود که حسادت و رخوت مثل ای به جان عقل و درکم افتاده بود و از همه چیز حسلم هم سر می رفت کتاب های مداوم محمد که دیگر تقریبا شبان روزی شده بود و ولعی که برای خواندن و فهمیدن داشت هرسه مرا در میآورد. آفرد به خصوص که خودم هیچ کششی نسبت به خواندن حس نمی کردم. به نظرم لزومی نداشت که آدم از همه چیز سردر بیاورد و خواندن برایم یک کار شاق و بیمعنی و اضافی بود برخلاف محمد که از خواندن سیر نمی شد. شاید برای فرار از درک واقعیت بود که سرعی را بهانه کرده بودم و در ذهنم او را مقصر اختلافاتمان قلمداد قلم داد می کردم. این بود که هر صبح جمعه وقتی چشمم به آنها می انگار دشمنهای خونیم را میدیدم. حالم دگرگون می شد محمد با شوخی و ناز و نوازش و دندان سر جگر گذاشتن سعی می کرد با من راه بیاید تا عادت کنم قافل از اینکه که هرچه او گوتاه می آمد من خودم را مهق تر می دانستم. جوری شده بود که یواش یواش باورم شده بود که صرف رفتن من به کوه منت بزرگی بر سر اوست. ولی رفته رفته شاید محمد خواست جای رفتارهای سرد مرا پر کند و شاید میخواست راه و رسم رفتار کردن را به من یاد بدهد و شاید هر دوی اینها که هرچه رفتار من سرد و بی علاقه و شاید بشود گفت تحقیرآمیز بود محمد حرارت و علاقه و احترام بیشتری نشان میداد. و این ناگفته جنگی پنهان بین ما راهانداخته انداخته بود. همان روزها بود که امیر یکی دو بار در مورد رفتارم به من تذکر داد و من فقط گوش دادم و از یاد بردم و همان رویه را ادامه دادم. چون کار از جای دیگر خراب بود. من آنچه میخواستم میدیدم. و آنچه می‌خواستم می‌شنیدم و می‌فهمیدم. دریچه قلب و ذهنم به روی آنچه نمی‌خواستم بسته بود و همین بستگی هم بالاخره مرا زمین زد. روزها مثل برق میگذشت و به پایان سال تحصیلی و کنکور و در عین حال سالگرد خانم جون و در نهایت ازدواجمان نزدیک می‌شدیم. در حالی که فاصله فاصلهمان روز به روز بیشتر میشد. محمد که صبرش تمام شده بود سعی داشت مرا مجاب کند و به راه بیاورد. منتها دیگر دیگر شده بود و من دیگر صحبت و تذکر های او را بهانه گیری میدانستم و حرفهایش را قبول نمیکردم. وقتی صحبت و تذکر نتیجه نداد کار به بحث و جدل کشید. و وای که من توی هیچ مرحله‌ای شعورم نرسید و عقلم کار نکرد و بدون اینکه متوجه باشم به او فهماندم که آدمی زبان نفهم و کودنم که حرف حساب سرم نمی‌شود به یاد دارم که آن روزها سریا همیشه همراهش یک چیز خوراکی داشت گاهی نان و پنیر و گاهی ساندویچ کوکو یا بعضی وقتها ساندویچ تخم مرغ بین راه وقتی همه خسته می شدند، به قول امیر در ساکه سریا که باز میشد همه جان میگرفتند. یکی از روزها با خودش یک شیشه کوچک مربای هویج آورده بود. جواد در حالی که شیشه را از دست امیر که به مرباها حمله کرده بود به زور میگرفت گفت: همین یه شیشه از مال پنج تایمون تا چه داری شیشه رو درسته میخوری؟ هل نشو، مامانم درست نکرده، دست بخت سرعی هست. همچین آشه دنسوزگی هم نیست که حمله میکنی. من که دلم خونک شده بود بی اختیار با رضایت خاطر لبخند زدم. اما با تعریف و تمجید امیر و محمد لبخند روی لبم ماسید. از تعریف و تشکر با حرارت و قلیظ محمد از سرعی ها. از هرس. جلوی چشمهایم را بخار گرفته بود. این بود که موقع برگشتن توی ماشین خودمان وقتی امیر داشت از خوشمزگی مربا با صحبت میکرد و وقتی محمد گفت دستپختش مثل زهر خانومه جواد هم با اینکه مرد دستپخت خوبی داره دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. و یک دفعه این حرف بی معنی و بیرفت از دهنم درآمد که با شغلی که مادرش داشته بایدم دست پختش خوب باشه. امیر یک دفعه جا خورد و با خشم به سمت و من برگشت و پرسید. یعنی <تصفيق> چی؟ yani, شانه را بالا انداختم و با تحقیر گفتم. خب مادرش حتما آشپز خونه هام بوده. اینم یاد گرفته دیگه. هیچ وقت نگاه تحقیرآمیز و پر از انزجار محمد و امیر از یادم نمی رفت. وقتی چشمهایم توی آینه ماشین به چشمهای محمد افتاد، دیدم چنان سرشار از انزجار و خشم و شاید اشم است که جا خوردم و خفه شدم. انگار دیگر مرا حتی لایق جواب هم ندانستند و تا خانه حرفی نزدند. سکوتی سنگین برقرار شد. شاید این اولین بار بود که محمد احساس کرد من درست به نیستم. آن روز اولین باری بود که محمد دیگر جلوی خانوادهام سعی نکرد سردی روابطمان معلوم نشود آنها هم با تعجب و ناباوری بیاعتنایی او را به من دیدند تقریباً چهار شب بعدی محمد انگار مرا نمیدید مثل سنگی سرد و سخت کنارم دراز میکشید طوری که حتی سر سوزنی با من تماس نداشته باشد و من از غیض و قصه پشتم را به او میکردم عشق میریختم و با گریه خوابم می برد. اما نتیجه این رفتارها باعث نمی شد به اشتباهم پی ببرم. تنها کینه و نفرتم را از سریا و خانوادهش بیشتر می کرد و پافشاریم در رفتار غلط را. تازه بعد از چهار روز هم مجبور شدم خودم را به مریضی بزنم تا با من حرف بزند و برای مدتی کوتاه حساب کار خودم را کردم. و یکی دو هفته آرامش بینمان برقرار شد. منتها آرامش قبل از طوفان. چون به محض اینکه اوضا تقریبا عادی شد سختی بی اعتنایی و قهرش را فراموش کردم و همان رفتار مزخرف و فکرهای احمقانه به کل ام برگشت. همان ایام مرگم ما را به عروسی خواهرش مهتاب دعوت کرد. مریم می گفت شوهر مهتاب مرد پولداری از شهری است و مهتاب هم بعد از ازدواج قرار است به یزد برود روز جمعه قرار بود جشن عروسی برگزار شود خوشحال از اینکه محمد به خاطر من برنامه کوهش را به هم زده همراهش به آرایشگاه رفتم و قرار شد نزدیک ظهر دنبالم بیاید بعد از مدتها دوباره با شوق و ذوق و خیال راحت توی آرایشگاه منتظر آمدنش بودم که علی آمد دنبالم و گفت مادر جواد حالش بد شده بود. امیر و محمد رفتند به برندش بیمارستان. محمد آقا گفت من بیام دنبالت. خودش سعی کنه زود بیاد. ولی نیامد. تا آخر شب هم نیامد. من همراه مادرینا رفتم عروسی. چندین بار در طول مراسم و موقع شام پیغام فرستادم و سؤال کردم. ولی نیومده بود لحظه به لحظه حرس و عصبانیت در دلم انباشته میشد انگار جو عروسی محتاب و ناراحتی مریم و مادرش هم ناخداگاه بر اعصاب من اثر میگذاشت شوهر محتاب پانزده شانزده سال از خودش بزرگتر بود و بیشتر از سنش ظاهر ناهماهنگش با محتاب توی زوق میزد میگفتند شوهرش یکی از تاجرهای معروف از دست و وضع مالی خیلی خوبی دارد و از قرار محتاب به قول خودش خواسته بود آینده اش را با ثروت سرشار شوهرش و برتری سنی و ظاهری خودش تضمین کند و با این دلایل با وجود مخالفت شدید اکرم خانم با آن آقایی که اسمش حسن مشیری بود ازدواج کرده بود به هر حال عروسی تمام شد و موقع خداحافظی با تعجب دیدم که محمد کنار پدرم توی حیات ایستاده. ما که بیرون آمدیم با نگاهی پوزش خواهانه در حالی که با مادر و محترم خانم سلام و احول پرسی می کرد به طرف من که به خاطر پاشنه بلند کفش آرام آرام از پله ها پایین می رفتم آمد تا کمکم کند در این حال برای مادر توضیح می داد که امیر هنوز پیش جواد که بیمارستان است مانده تا اگر کاری لازم بود انجام دهد من که بودم نه جواب سلامش را دادم نه بهش نگاه کردم و در تمام طول راه در حالی که او از وخامت حال زهرا خانم و پیدا نشدن داروی مورد نیاز و غیر برای پدرم حرف میزد من فقط ساکت و سامت بیرون را نگاه میکردم. به خانه هم که رسیدیم سرم را زیر انداختم و بدون توجه به او با عصبانیت از پله ها بالا رفتم. اینکه آدم همیشه خودش را طلب کار بداند مرض بدی است و این مرض بدجوری جوری غعم را گرفته بود و باعث شده بود همیشه خودم را طلب کار بدانم. آن هم نه طلبکاری با انصاف. بلکه طلبکاری کاری و بیمنطق و غیر قابل تحمل در اثر همین مرس هم آن رفتارها از من سر می زد. خلاصه با حرس و خشم و احساسی کاملاً حق به جانب لباسهایم را قبل از آمدنش عوض کردم پتو و بالشم را از روی تخت برداشتم و روی مبل راحتی در حالی که پشتم را به در کرده بودم دراز کشیدم به خیال خودم میخواستم ادبش کنم. چند دقیقه بعد او هم آمد. از مکسی که توی بستن در کرد فهمیدم از این که روی مبل خوابیده جا خورده. دلم خنک شد. احساس کردم تیرم به هدف خورده. با صدایی که برخلاف انتظارم نوازش گرد که نبود هیچ رگه های خشم هم داشت پرسید. چرا اونجا خوابیدی؟ جواب ندادم. دوباره شمرده و جدی و غضبناک پرسید گفتم چرا اونجا خوابیدی من که از لهنه صدایش جا خورده بودم در فکر بودم که چه بگویم که یک دفعه با قدم های تند نزدیک شد و با عصبانیت پتو را کنار زد بازویم را با خشونت گرفت و نشاندم چشمهایش آنقدر خشمگین بود که ترسیدم و سرم را پایین انداختم بالش و را برداشت و پرد کرد روی تخت. بعد در حالی که به سختی صدایش را پایین نگه می داشت، چانه ام را گرفت و سرم را بالا برد و شمرده شمرده گفت این آخرین بار باشه که این کار رو می کنی. فهمیدی؟ ترسیده بودم. باورم نمی شد محمد است که اینطور رفتار می کند. در حالی که وحشت توی دلم را خالی کرده بود، سعی می کردم بروی خودم نیاورم که ترسیدم با تحکم و خشم و صدایی بلند گفت فهمیدی یا نه؟ لرزان با سر جواب مثبت دادم دستش را از زیر چانم برداشت و با همان لحن گفت فهمیدی؟ با دست پاچگی برای اینکه دوباره داد نزند گفتم بله فهمیدم خیلی خوب حالا خوب گوش کن، فکر نمی کنم فهمیدن اینکه وقتی کسی احتیاج به کمک داره، حالا چه آشنا چه غریبه آدم وظیفه داره بهش کمک کنه، کار خیلی سختی باشه. هست؟ همونقدر که عروسی خواهر دوستت تو اونقدر برات مهمه، مریضی و ناخوشی مادر دوستم هم برای من مهمه. اگه واسه سرگرمی و خوشگزرانی دنبال جنابالی و این عروسی نیومده بودم، جای گلایه و چه میدونم قهر و این بچه ای که تو بلدی و داشت ولی لابد اینو میتونی بفهمی که این پیش آمد بدون اختیار من اتفاق افتاد و تو به جنگ حتی بپرسی که چی شده اون رفتار جلوی دیگران و جواب سلام دادنته این هم رفتار علانته این که من چرا نتونستم بیام و نمیفهمی ولی این رفتار و خود خودتو که بیدلیل داری انجام میدی من باید بفهمم نه؟ حرفایش درست بود. ولی خشونت رفتار و کلامش که دور از انتظار بود و اشتباه من که باز فکر می کردم به خاطر جواد و خواهرش با من اینطور رفتار می کند باعث می شد خطای خود را نپذیرم از طرفی نمی که او هم خسته است و هم عصبی و همینقدر که به خاطر من خودش را آخر شب به مجلس عروسی رسانده جای تشکر دارد و حق دارد که رفتار مسخرم او را از کوره به برد سرم را زیر انداختم و در سکوت داشتم فکر می کردم که دوباره بازویم را گرفت و بلندم کرد و بدون کلمه ای حرف مرا به سمت تخت برد و بعد دوباره شمرده شمرده و با تحکم گفت اینو نه امشب برای همیشه یادت باشه جای خواب اینجاست هر اتفاقی که بیفته و هر طوری که بشه کسی جاشو جدا نمی کنه فهمیدی؟ وقتی تهدیدآمیز حرف میزد، حس لچ بازی توی وجودم زبانه میکشید. سرم را بلند کردم که حرفی بزنم، ولی باز چشمم که به چشمهایش افتاد زبانم بند آمد. هنوز اصابانی تر از آن بود که بشود به او حرفی زد. اشک توی چشمهایم حلقه زد و ساکت شدم. بغزم داشت میترکید. او هم فهمید، ولی بروی خودش نیاورد و گفت. بار آخرت باشه. حالا که اینقدر خسته این بفرموین بعد به سمت در رفت. ناخداگاه با صدایی بغزالود و دستپاچه گفتم. کجا میری؟ با خود گفتم مبادا دوباره میخواهد به بیمارستان برود. بدون اینکه برگردد گفت. تلفن بزنم. در را بست و رفت. کار صحیح چه بود؟ اینکه به رفتار خودم و حرفهای او دقت کنم ولی مثل همیشه به تقصیر همه فکر می کردم غیر از خودم و بیشتر از همه به جواد و خانوادش توی ذهنم حمله می کردم و آنها را مقصر می دانستم. همیشه به خاطر آنها بود که تعوی من می از اینکه به خاطر آنها محمد می توانست تا این حد با من خشن رفتار کند دلم می و از کینه پر می شد همانطور که نگاهم هم به در مانده بود اشک سرازیر شد. لبم را گاز میگرفتم و توی دلم به جواد و بقیه بد وگیراه میگفتم که در باز شد و محمد تلفن به دست آمد توی اتاق. فوری رویم را برگرداندم و پشت به او دراز کشیدم و پتو را روی سرم کشیدم. میدانستم که اشکهایم را دیده ولی دیگر مثل قبل از بی بیتاب نمیشد. این بار هم به روی خودش نیاورد. به امیر تلفن کرد و پرسید اگر لازم است برود بیمارستان و گفت که تلفن توی اتاق ماست. اگر کاری داشتند زنگ بزنند. بعد سر فرصت لباسهایش را عوض کرد. چراغ را خاموش کرد و دراز کشید. نه صدایم زد، نه بقلم کرد و نه دیگر حرفی زد. فقط آهی سرد و طولانی کشید و سکوت کرد. رفتارش گریه را شدیدتر تر کرد ولی اکسل عملی نشان نداد و من مثل بچه هایی که از بی پناهی و تنبیه شدن مضطرب و بیتاقت میشوند به حق به حقه افتادم بلکه با سلاح همیشه گیم دلش را نرم کنم اما باز هم انگار نه انگار. مستعصل و خشمگین نشستم دلم میخواست سرش فریاد بزنم و مشتم رو توی سینهش بکوبم. اما چشمم که به او افتاد نتوانستم. ناتوان سرم را رو روی سینهش گذاشتم و زار زدم. نیم خیست شد و بقلم کرد. ولی ساکت. این بار نمیخواست جلوی گریم رو بگیرد. صبر کرد تا خودم آرام شوم. بعد آهسته گفت. یادم بهت گفته بودم از اشکات به عنوان سلاح استفاده نکن. یادته؟ جواب ندادم. نه حوصله یه حرف زدن داشتم. نه حرفی برای گفتن. این بود که او ادامه داد. ببین مهناز. این فقط تو نیستی که احتیاج به آرامش داری و این که من درکت کنم. منم تا حدی توان و ظرفیت دارم. منم دوست دارم که تو درکم کنی. اینکه تو به خاطر هر مسئله یه ناچیزی بخوایی قهر کنی و زار بزنی و من نازه تو بکشم اونم بدون اینکه خودت یک خورده فکر کنی همیشه از من بر نمیاد منظورم رو میفهمی؟ از همه بدترین که توی این روش نادرست هر بار از دفعای قبل بیشتر پیش میری حالا به گذشته کاری نداریم همین رفتار امشبت دارم کم کم به این نتیجه می که شاید این نرمش بیش از حد منه که باعث این زیاده روی های تو شده. سعی بفهمی که استفاده از یک راه و یک روش برای همه ی مسائل و گرفتار زندگی درست نیست. فکر میکنی تا کی میشه برای هر چیزی اوقات تلخی و گریه بکنی و من نازه تو بگشم. هر وقت ما میریم بیرون همین وضعه. من برام کار پیش میاد همینه. از همه بدتر اینه که تو به مرور این رفتار رو داری به بیرون از اتاق خودمون و جلوی دیگران میکشی و این دیگه اصلا قابل قبول نیست. اینجا توی تنهایی هر مسئله ای ممکنه بین ما پیش بیاد ولی بیرون و جلوی دیگران قضیه فرق میکنه کنه. منظورم بچه میشی؟ ببین دفعه قبل که تازه من نه شدت خودت یه بار رفتار تو رو جلوی دیگران با خودت کردم چقدر برات سخت بود و تلخ. معنوس تو نه خواهر منی نه زن من هستی میفهمی تا حالا شده خودت بیای از من درباره چیزی سوال کنی و مثل دوتا آدم عاقل و بالغ با هم بحث کنی احساسا من دلم میخواد تو خودت خیلی چیزا رو بفهمی و درک کنی و رفتار کنی دوست ندارم بهت بگم چه کار بکن چه کار نکن اونجوری دیگه کارات ارزش خودش رو از دست میده نمیخوام چیزی رو به دیکت کنم و تو بر حسب وظیفه انجام بدی. اون وقت بهترین کارات هم دیگه به دلم نمیشینه چون دیگه فکر و عمل تو نیست. حرفامو میفهمی؟ ولی متاسفانه نمیفهمیدم. مقص حرفهای او را درک نمیکردم و بیهوده وانمود میکردم که میفهمم. این بود که مست گرمای آغوش او و خسته از گریه و کلافه از آنچه گذشته بود، توی بغلش خوابم برد بدون اینکه به نتیجهی رسیده باشیم بعضی آدمها عشق و دوست داشتن را افساری به گردن طرف مقابل می‌بینند و این بدترین نوع دوست داشتن است شناعتی واضح که تقدس عشق را آلوده می‌کند و به زلالت می‌کشاند اشق همراه شدن از روی تمایل است سر به راه دوست گذاشتن از فرط نیاز برای فدا شدن است. نه دامی برای به اصارت کشاندن و نه قل و زنجیری به پای آزادی و پرواز. عشق باید بال پرواز باشد برای گذران زندگی. نه شکستن بال دیگری که مرغ خانگی پر و بال شکسته ای باشد. از سیر در دام. و آن روزها من نادانسته در راهی قدم برمی داشتم که سمره چنین طرز فکری بود. برای از دست ندادن او محمد را اسیر می و عشقم را زنجیری که با آن محمد را به دنبال خودم بکشانم. و خب اشتباه می کردم. هم در طرز فکرم و هم در مورد محمد. او کسی نبود که به تن تندر دهد.